دوستان دختر رز توبز مستوری کرد شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد مجدگانی بدهی دل که دگر مطره راه مستانه زد و چاره مخموری کرد نبه هفت آب که رنگش به صدا تش نرود آنچه با خرقه زا هدمه انگوری کرد قنچه گلبون وصلم ز نسیمش بشه کفت مرق خوشخان ترب از برگ گل سوری کرد حافظ افتادگی از دست مد زان که حسود ارز و مال و دل و دین در سر مغروری کرد